می را که خیز خود دارد پاسش، او آب حیات است و منم الیاسش، من قوت دل و قوت روحش خانم، چون گفت خدا منافع اونل لناسش. می گرچه حرام است، مدامش مینوش، با نقمه و چنگ صبح و شامش می نوش، جا می زمهی لل گرد دست دهد، یک قطره رها کن و تمامش مینوش. هفته ها دو دو در دین کم و بیش، از ملت ها عشق تو دارم در پیش، چه کفر و چه اسلام، چه تاعت، چه گناه، مقصود توی بهانه بردار از پیش. یکی یک هنرم بین و گنه ده ده بخش، هر جرم که رفت هست تن بخش، از باد و هوا آتشکین را مفروز، ما را به سر خاک و الله بخش.